آمدن اید مبارک بادت وان مبایید که کردی مرواد از یادت در شگفتم که در این مدت ایام فراغ برگرفتی زهریفان دل و دل می برسان بندگی دختر رز گو به در که در مهمت ما چرز بنداز آدت شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست جای قمباد مران دل که نخواهد شادت شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت بوستان سمن و سر و گل و شمشادت چشم بد دور که ازان تفرغت باز آورد، تاله نام و رو دولت مادر زادت آفز از دست مد دولت این کشتی نو ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت